بیاری یزدان فروه های پاک نیاکان آرام آرام از جهان مینو فرود آمدند و گستوی پاک سپندار مزرا در بر گرفتند چشمه برخیش پیچید و جوشان شد آد برخیش لرزید و پیچان گشت خاک برخیش روید و زایان شد و رفیدوین گرمای جان جهان دستفشان از میان جان آنان بگذشت شاخه نازک در میان دست های نرم باد دستفشان شدند قنچه از شاخه سرگرون آورد آسانون را بدید و خندان شد و آوان و گوزنان در پهنه سپنده مل پای کوبان در دونه نوروزی را با چهار چرخ ذرینه، آب و باد و خاک و آتش به سوی خان نوروزی ایران بودند. آنک، مهمامی روان و نیاکان و فروه پاکان در خان نوروزی فرزندان، به شادی و آزادی و آبادی ایران نوروز ایران بر شما باد خداوند جان و خرد که این میشه اندیشه برمگرد خوش از بر شما این نوروز باستانی این آین بزرگ ایرانیان ویژه برنامه پنجره های مهتاب رو میشنوید که استاد فریدون جنیدی در بیست و نهم اسفند ما در شب سال نو برای شما برای ما مثل هر یکشنبه شب صحبت میکنند از شاهنامه اول از های نوروزی استاد درود و سلام بر شما درود بر شما شاد باشید خودسته بود یه اتفاقی افتاده شما که الان رادیو رو میشنوید شبکه فرهنگ رادیو رو میشنوید یه اتفاق دیگه هم افتاده که الان ما با شبکه آموزش تلویزیون شبکه خفل یکی شدیم اون عزیزان تصویر ما رو دارن و صدای ما رو میشنوند و برنامه ما رو میبینند از کنم برای شما ما در رادیو فرهنگ برنامه پنجره‌های رو محتاب رو داریم که هر شب این برنامه رو برگزار میکنه شما شنونده ها میدونید الان اندیزانی که در شبکه آموزش دارن برنامه ما رو میبینند اونها هم میدانند هر شب یکی از اساطی در برنامه پنج یک سال و اور اولینسون یک سالو چند ماه شده؟ یک سالو دو سه ماه شده بله یک سالو دو سه ماه هستش که با استاد فریدون میجومیدی در باره شاهنامه فردوسی داستان های شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم ایشان برای ما از راز سای شاهنامه میگویند از داستان های شاهنامه میگویند میگوین، برای ما میخونن شاد میشویم با شنیدن شاهنامه غمگین میشویم با لذات غمگین شاهنامه با زندگی در لذات ده و برنامه خیلی خوب داریم و من در این برنامه ارز کنم چه شهروندهای عزیز میدونم نمره میگیرم فکر کنم این آخرستازی نمره خوبی من بپنیم ببینید ملت ایران به شما چه نمرهی یکی گفت بقید نمره قابلی رو بگیری خوبه این خب ما میخوایم ارز کنم برای شما عزیزانی که در شبکی فرهنگ فعالیت میکنند به شما که تلویزیون رو تلویزی آموزش از ما امشب اصلا دوازده شب دیگه برنامه هم داریم در شبکه هفت سین ما رو دیدید که هفت خیلی خوب و خیلی سمیمی و خیلی جمجو هست که عزیزان آماده کردند فضای سمیمی داره رادیو فرهنگ و برنامه های خیلی خوبی در ایام نوروز به مناسبت ایام نوروز دوستان عزیزان همکاران بسیار خوب و پرتلاش من. با زهماتی که مدیریت محترم آقای کازمزازی عزیز میکشن و همچور عزیزان دیگه در این برنامه در شبکه میکشند یعنی شده که شما لحظات خیلی خوبی رو با و فرهنگ داشته باشید من بیشتر از این صحبت نمیکنم من چقدر حرف زدم <تصفيق> میخوام حرف کنم برای شما که الان که شما شبکه رادیویی ما رو دارید می‌بینید، ما آماده میشیم برای برنامه و اول نخوص درباره باره آینهای نوروز استاد جنیدی صحبت می‌کنم. من بدون ایش مقدمی این آین از کجا اومده؟ چی شد است؟ بنده باید مقدمه از کنم یه بیت از شاهنامه رو میخونم برای کسانی که تو کنون... نه که من رو خوندن و نه این سخنان رو شدیدن در باره انسان وقتی که وجود میاد پس از جانبران این بیت های چنین است که سرش راست برشد تو سر به بلند به گفتار و خوب و خرد پایبند این درست تصویری که شما توی کتاب های زیستشناسی میبینید که نواکان انسان های نخستین رو در حقر میشون میدن که اول خمیده هستن و کم کم بلندتر میشن بلندتر میشن تا به صورت امسان در میاد که پیشتر از همه ایستاده و این بیت شاهنامه داره این منظره رو دیگه و ما مب... کم توجه بمونیم به این شاهنومه کانومه خیرد و فرهنگی نیا این یعنی این منظری که امروز سیستی شناسان می برای این که بگن که نجات انسانی از کجا به اینجا رسیده این در هم یک بیت نفت <سؤال> <سؤال> دیگه یکی داروین داشته بر بنیاد همین چیزهای که داروین البته دارو. ما یک لوحهی داریم یا آویزی داریم که می کنم اون هم مثل بسیار از چیزهای دیگه اروپایی ها با خودشون بردن از جمله این در آلمان هست در کتاب ایران پیش از محمد این نام کتابه این لوحه رو آوردن که کیومس رو در میان نشون میده. و دستا پای پشک و باریک داره و سرش تقریبا بیشتر پشک داره و موهای خیلی پریشانی داره و در, دست در دستش یک چوب هست و پاهاش دو شبقه داره مثل سوم مثلا آخو یا سومه گوزفند و یعنی در جانورانه یه پیکری داره بین جانور و انسان و خب اروپایان که اینو بررسی کردن میگن که این که عقلن در زمان رسانیان دوحه تصویر شده در اون زمان ما این رو می دانستیم یعنی داروین چند صد سال پس از اون زمان شاید هزار سال پس از اون زمان این تصویر رو داره در حقیقت به جهانیان میگه. این مفهوم اینه که نهاکان ما می و در این بیتی که من خوندم می که به روشنی اون صحنه آشکار میشه این اتفاقات بعد از رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علی و سلم بوده این, این, این تصویری که کی... پیشتر بوده پیشتر بوده, بوده. بل. بل. بل. بل. بعد از قبل از حول استان بعد ایران خب باید. من که پیشترم در این گفتم گایه من از دو بازی عوستوی گرته شده یعنی جان من را یعنی میرا یعنی جان میرا یعنی پیدا شده یعنی جان در جهان که با ما هر کم این رمزای شکلت است که من در یکی از این گفتارها وقتی که تلفن تندی شده بود که با نگاه سنتی به شاهنامه میلیه است گفتم برای اینکه شما شاهنامه را درک بکنید بایستی سرتون از روی زمین بردارید و به که که شاهنما نبا کنید خب حالا من این یه بیتو خوندم با تفسیر میبینید باید که بقیه شاهنامه را همطور جدا تفسیر کرد مخوستین سخنی که در شاهنامه از نورونی میاد در زمان جمشیده یاد داره که زمان جمشید زمان شکوفایی زندگی ایرانیان بوده و یه مخشه برابستا بوده یعنی همزاد درخشش و این زمان یک نفر نبوده ما این روز که جمشید یه نفر بوده اما در حقیقت یه زمان خیلی چورانی بوده که اون سرمای بزرگ برم و چارم هم در این دوره رخ میده. با اینا همه در کتاب های ما اومده چیزایی که دانش زمیشی امروز دیده کرده در کتاب های ما از در شام همه هست پس از اینکه که رشتن و بافتن و دوختن و شبستن پدیدار میشه در دوران جمشید یعنی بشر پیشتر درهنانده از این دوران هست که کم کم جامعه پدیدار میشه بعد بویه های خوش پیدا میشه بعد پزشکی پیدا میشه و جالب اینی که در این زمان یه پیجه خیلی شگفت در شانم اومده که پزشکی و درمان هر دردم در تندرستی و راه گزند. یعنی خیلی روشن و آشکار شما در این لت دوم هم میبینید که گفته که بهداشت رو از پزشکی جبا کرده یعنی چیزی که در این سطح جهانیان در فکر افتاده بهداشت یک گفتار دیگه است و پزشکی یک گفتار دیگه با اینکه که من پیشتر چیخافتم واجه فیزشکی رو یک گردیگ باز میشکافم به با این در زبان امسترائی یعنی در درنج و این واژه در زبان فعلی میشد بش و در فرسی هم بش خونده میشه و در شانان فقط دوباره آمده یکی در نامه روستان فراخزار به برادرش یکی در انگامی که تورانیان حمله میکنن به زابل و در جنگی که شماساس و قضربان دارن با زال دوبار دو فقط دشتاقیم این پیش اومده با منی در درنج حالا به از یعنی زدن در درنج که این واجه کم کم در زبان فارسی شد پزشک که در زبان فرسی پچیشک در زبان ارمانی داریم این پجیشک در زبان فارسی دور اول به جشک داریم که این بود پزشک خونده میشه بنابراین پزشک در زبان یعنی مفهوم داره یعنی کسی که با در, در رنج مبارزه میکنه اما در تندرستی یعنی بهداشت عبارت از این بوده که چون در اون زمان ها بیماری پدید می بیماری های واگیدار و این بیماری ها در سطح کشور اون هم کشور بزرگ آریایی باستان منتشر می و خیلی افراد رو می در اونجا دانشی پدید اومد که جلو این رو بگیرم اولا این های باگیردار رو در زبان ها داریم عشق تره من عشق یعنی شتاب که در واجه عشق هست در واجه آهو که آسو بوده یعنی با شتاب هست در واجه روباست یعنی روباینده شریع که روبا شد بعد در لبان فرسی در واجه سفه که بعداً شد سفه و بعد وی تبدیل ویگاه شد مثل گوشتاس و بیشتاس شد در این جانوار هم دیده میشه از یا اص یعنی, یعنی شتاب تر یعنی گذاشتم که بر باید در این روزی رو ما در یک جایی که داشتی میگذاریم و در تاجکتان افغانستان امروز اگر میخوان بگن که از خیابان عبور کردن تو خیابان رو تیر کردم. یعنی همون تر کردن. یعنی از این صبح اصور رفتم این روزی بیترتن در زبان زبانفعلدی بعد به تدیدق به گفت شده و چه بزار شد گذردن و گذشتن در زبان فارسی یعنی عبور کردن خب از طرما یعنی بیماری که خیلی با شتاب و با سرعت میذاره به پنه ای که فرشان و برای این وقت بنیاد های بهداشتی فرام کردند که خیلی خیلی قوانینی شدفت داشت و کسانی که میخواستن وارد بشن یا کسانی که دست به پلیدی میزدن یا حتی دست به جنازه می بعد باید از اون در حالت آزمایش ها بگذارن که نه شبان روز طول می و اون نام اونجا بود نشبه خانه یعنی نه شبان روز باید اونجا تمیز بشن که بزنن بیان بیرون یعنی خیلی خیلی بهداشت و این که امروزم می بینید که ایرانیان برز اینکه یه ای چیزی شستن سه بار آب می این یادوگار پیشینه یعنی دقت در این که بهداشت که حقیقت در پتشکی و بهداشت هم ما چند هزار سال پیش پیشیه داشتیم خب ارض میکنم برای شما تلفن‌های های برنامه شما حتما میدونید اما دوباره در این شب سال 9 در 29 همه اسفن ماه 1389 عرض میکنم خدمت شما 222 4185 222 4185 222 585 دو سفر ۲ ست دو صفر و شماره پیامتی ۳ ه ۵ و سی هزار پانسد و پنجا و, هشت. سی هزار پانسد و, پنجا و هشت ممنون از شما که پیامک های زیادی برای ما دادید و ما رو یعنی بنده هدایتی رو استاد بزرگ پریدون رو به پای هفسین خودتون کشوندید از هفسین خودتون برای ما گفتید گفتید که ما اونجا هستیم شما هم در قلب ما هستی، در برنامه ما هستی این حضور شما حضوری بسیار خوب و چشنگیر بوده در این یک سال گذشته سپاس گذاریم از اینکه که فرهنگ رادیو و به برنامه پنجره های رو مختب رو میشترید از طریق پایگاه سلا ما میتونید با ما اشتبات داشته باشید www.radio.ir علومی که مسافرت داشتن خارج از کشور اصلا حتما دارن صدای ما رو اونجا پیگیر هستن، برنامه ما رو میشنونن. از طریق ماهواره خاصه افت دیگه به آشنایانی که میان ایران الان هم برنامه ما رو میشتونن. بفرمایید که از طریق ماهواره هارت اون بخشی که رادیو هست، میتونن رادیو فرهنگ رو بشنونن و برنامه‌های پنجره، برنامه پنجره های رو. محتابه. این اتفاقی که افتاده بود برای ما این لحظاتی قبل دوستان از اون در شبکه آموزش تلویزیون اومدن اینجا بر های از برنامه رو ضبط کردن به طور زنده پخش کردن تعاملی بود بین رادیو شبکه آموزش تلویزیون و همینطور رادیو فرهنگ که ما تونستیم از این طریق معرفی کنیم خیلی کوتاه من تونستم خیلی سریع معرفی کنم شبکه خودمون شبکه فرهنگ رادیو رو که شبکه فرهی هست موسیقی میشنویم ادامه صحبت استاد فریددونتونی رو در برنامه ویژه ای که به مناسبت سال نه سال ۱ و ۳صد۹ چقدرمت گذشت؟ آی گفتیمره چی بازی میمون استادیم؟ جوان جهان ضره هم پره به همین خاصله ای که به موسیقی رو داشتیم میشت میشت من رفتم آب برای استاد جاندی بیارم بیرون رفتم یه دونه شیرمی هم خوردم که رو میز بود و اومدم تو الان آب خورنش هم رو بگم هفتینی خیلی قشنگی چیدن من یه چیزی میخوام بیا قبل که شما با سوافتاتون ادامه استاد سوال خوبی داره این آین بختن میگیره وقتی صحبت از این آین صحبت بخت خب شو شوری از گفتن شیرینی و میکنه چون در این شور در این اشتیاق در این عشق که جشن بزرگه ما آینه بزرگ همبستگی همه ایرانیان هست همه فارسی زبانون که به این سرزمین علاقه دارن اون اتفاق بزرگ خاص. ما هم قمدینی هم خوشحال حس ده هزار تا سال همینه سالی که گذشت حالی که میخواد بیاد هسته حال عجیبیه شورحال عجیبیه استادتونه بی بیدوارم به شادی بشه. بشی امید خدا به امید خدا من تو حال سخونم بزرم جیزون من یه دفعه رفتم این فضایی دیگه هسته رو گفتم ببخشید خب حالا دارو پدید میاد بزرشگی و زرمان در هر درد من در هم درستی و و دارو نیاز به ظرف داره این پیشترامات جریان در حقیقت نورزه دارو در زبان عویسوی مرد و مرده بود و حتی گوی هفته پیش گفتم که اگر نسخه می روشتند میشه شونم وی این نسخه نیوی سیه یعنی دارو چند هزار سال پیش حالا من چند هزار سال نمیگم تو در پایان از کنم ها ها. کشتی پیدا شده جاده ها کشتی شده و درمان و دارو پیدا شده درگری و نجاری پیدا شده و پوستیرایی پیدا شده و زندگی از اون حالت پیشین چند هزار سال پیش که فقط مردم به بودن بودندن تغییر صورت داده به یک صورت بسیار زیبایی درمده که ما تقریبا تا 70-80 سال پیش تا 100 سال پیش از 95% اون وسائلی که در زمان جمشید بود استفاده میکردیم حالا دیگه کم کم این در حقیقت اجناس خارجی وارد شد و شیوی زندگیری تغییر داده این تغییر متوجه و حتی متوجه همین 80-90 سال 100 سال پیشتر همه همون زندگی در جمشید رو داشته خب دو بیتی که در باره نور میاد چنین است سر سال نو قرمز فرودین براسوده از رنج تن دلزکیین بزرگان به شادی بیا راستن مای و جام و رامشت خواستند. خب برای اینکه میدونی که چندبار می هم من گفتم که در یون باستان روزها رو نمیش بودن هر روزی نام داشت داشترمز یعنی اهرممزار روز اول بود و بهمن نه همیشینیک، که ویژه هورموزوس روز دوم دو هم تو تا سه روز هر روزی برخوشی نام داشت. هورموز فردادین یعنی روز اول با روز اول فردادین. این روزی که شنبه روز با هم برابر میشه. خب نیا ما چطور در یک هفته که شنبه روز با هم برابر میشه؟ اگر واقعیتی برای سنجش زمان نمی داشت. این خیلی مهمه این فکر نکردی. دوم، ما میدونیم که خورشید نو یه یا روز نو که حالا امروز میگیم روز نو, نو روز موقع صورت میپذیره که خورشید از برش بره یا اطور کنه خب این بنابراین وقتی ما بروتاله میشناختیم نخستیم گامه ها رو برای پیدایی دانشی که اخترماری میگن و امروز میگن نجوم ما برداشتیم چند هزار سال پیش در سخن سخنقان گفت تا شما ببینید که چقدر عظمت داره پس اخترماری پدید اومده دو شب روز برابر شده لازمش اینه که ما یک وسیله برای سنجش زمان داشته باشیم من در این باره شاید سی سال فکر کردم تو بالاخره روشن شد برای من یه وسیلی سنجش زمان بود که تا پیشتر از این موضوعی که بهش میاد اصلاحات عرضی که در تخریب عرض بود و آهاز کرد که روستاهای ما رو ویران کنم و روستایی هم به شهرها هم خودشون هم فرهنگ زیباشون رو از یاد ببرن و همینکه های ما مادر شهرها بود حالا روستایی هم ریختن تو شهرها و باید خارجی بخورن. این درد خیلی خیلی بزرگی بود تا پیشتر از این تخریب و عرض ما در بسیاری از روسته یه وسیله برای یه، سنجش زمان داشتیم به نام پنگان که این پنگان میگفتن بعضی جاها فنجان میگفتن بعضی جاها فنگان میگفتن و این عبارت از, از یک جام کوچیکی که در آغاز سفالین بوده و بعد بعدن فریزی شد با مست و میان اینجا پایین که سوراخ بود این جام رو میگذاشن روی یه تشت آب و کم کم از اون سوراخ آب میمد تو اینجا. موقع که پر شد جام میرفت پایین این زمان رو میگذاشن یک پنگ و بیدرنگ اون کسی که مسئول این کار بود یه پنگ دومی رو میگذاشت که او آغاز بکنه چه نگو طول این مدتی که ترخ میکرد هشت ثانیه بیشتر کم در جاهای مختلف فرق میگن yeah. منطقی میدونستند دیگه یک شب روز چند پنگ میشه در مختلف چون همطور که میدونی که مثلا من من تبریز با من مثلا گناباد فرق با سنگ مثلا رودخونه یا خیلی من مختلف داریم من شاهی همطور زمانم برای این پنگ ها مختلف بود خب یک کسانی بودن که مسئول این گاه بودن و در یک اتاقی روزگار رو به که این درش بسته بود که احتمالا باد نزنه که وردش باد کمک نکنه به زودتر رفتن مثلا این،, این پنگ و بعد روشنایی این اتاق هم که اسمش بود پنگانخانه خانه و خلاسان گردن پنگو خنه این روشناییش به وسیله سنگ از سقف و از دیوارها ها تعمیم میشود که این سنگ ها نور رو تقریبا یعنی روشنایی رو به داخل میفرستادم. نمیدونم شما این همچی سنگاه رو دیدید توی آشباس خانه های قدیمی آن الان در یزد و کرمان هنوز این سنگاه هست که توی دیوار کار میذارن نور, نور رو نه ولی روشنایی خورشید رو منتقل میکنم داخل من ندیدم حالا هنوز هست یزد و کرمان داریم خب بنابراین هیچ عامل خارجی موجب نمیشد که این پن وقتی که نوبت آبیاری یک شخص شد این کسی که مسئول بود در پنگم خانه به کسی که بیرون در ایسده بود میگفت که زمان تمام شد آب رو بگردونید این پروژه پنگ که همراه با جام در اینجا اومده داره اشاره میکنه به اینکه سفال پیدا شده در جهان. یعنی در جهان ایرانی یعنی وصلی نیاکان ما در چیزمونی عاز کنن بخدا بدون سفال این ظرف ها پدیدار نمیشود چون قبلا ما یه هاوانا داریم سنگی که در بعضی از نواحی ایران هنوز هست این نمیتونستن به خاطر اینکه بسیار گران بود حرکت بدن از این سو و سو کنن وقتی که سفال پدیدار شد اون وقت تونستن که همه این کارا رو انجام بدن و البته در این ظروف سفالی مایعات وجود بیاد و حتی که از میوه ها بشه مایع اطر میامند که در این در این بیت از یاد شده اینها هم پدیدار شد منطقه اون جامه چون وقتی اینجا گفتن می و جام شاهنامه می بگی مای می پدید اومد اما از جام به خصوص یاد کرد جام یعنی پیدایی سفال و باستان شناسان جهان برترین پدیده فرهنگی جهان رو پیدایی سفال می چون که زندگی رو دگرگون کرد از این رو بگون کرد بسیار آسانی ها و خورمیها به بشر بخشید. و اینم باید بدونیم که افتخار پیدایی سفال در ایران بوده. البته پیشتر از این بسیار می بگفتن که از میان رودان و مصر پیدا شده ولی در تقریبا سی سال پیش پروفسور فیلیپ اسمیت از دانشگاه منرال کانادا در گنجدرگی هر سین کلماشان سفال دستاز این افتاب قضی 1400 پیدا کرد. که شیش هزار سال یا پنج هزار سال پیشتر از سفال های پیدا شده در میان رودان یا مثل بنابراین افتخار ساختن سفال هم برمگرد به نیاکان ما این همه اینا که گفته شد زمان رو روشن بکنه سفال هش هزار سال پیش پدیدار شد یعنی نوروز هش هزار سال پیش به وسیله نیاکان ما شناخته شد اروپا چقدر سابقه تاریخی داره کوهندترین کشور اروپایی یونانه که دوزار هشت سال پیش نداره. داره ما هشت هزار, هزار سال پیش نوروز رو پیدا کردیم حالا شما ببینید که در این هشت هزار سال چندین میلیارد چندین میلیارد نیاکان ما و عشق و, و پیوند این لحظات شگفت رو که جان جهان آمادگی دگرگونی داره و در حقیقت گل و سبزه و انسان و جانور همه در او شریک هستند این رو جهشن گرفتند و همه این التهابات و همه این آرزوها و همه این لحظات شوق و شور به ما منتقل شده واقعا باعث از تایم های شما رو بسیار هم زیاد هست میخوانم و تبریشتون و سوال‌هایی که کردید. در این روز آخر سال دو تا نکته رو حتما باید بهتون بگم. تشکر برای بودنتون در سال گذشته. آرزو برای داشتنتون در سال جدید. نوروز بر شما استاد جنیدی و حمید هدایتی فرخنده. لیلا فرزند ایران. در روز بر لیزا فرزنده جام با پیامه که بعدی سلام عیدتون مبارک استاد قبلا راجع به نامگذاری روزهای ماه برامون توضیح دادن میشه بگید که فصل ها را چطور نامگذاری کردن؟ بهار یعنی چه سؤال بهاری یعنی چه تعداد زیادی سؤال از شما شده استاد جونیدی ام... در اون سال های ما مخستین... دو فصل بیشتر نداشتیم این در دوران یخبندان که دو محطابستان بوده, بوده و در ده مازمستان بوده و در این دو محطابستان هم زمین اونطوری که در نویشتان بوده زمین سرد آب سرد یعنی یخ داده تقریبا و گیهان هم سرد داده این متعلق به دوران یخبندان مثلا سی پنیز پیش افتاد پنیز پیش بعدن فصل ها یه خود تغییر پیدا کرد یعنی تابستان بزرگ شد و زمستان بزرگ تابستان بزرگ از اول فروردین تا آخر مجر بود زمستان بزرگ از اول آبان بود تا آخر اسفند کم کم با واژه بهار رو پا در زبان پهلوی که شد در زبان فارسی پاییز آشنا بیشیم احتمال این که بهار بهار باشه یعنی بهی آورنده این هست من بار در یاد دوازده سالگی از ربان شد این رو شنیدم احتمال قوی که بهار به همین معنی باشه یعنی بهی آورنده بل. بعد بعد پیامک دردی آیا یکی سوال کرده که آیا بهار در فرزند سردوسی استاد فریدون جوندی آیا بهار به معنی به آراست ماهی که با خود بهترین حال رو می آوره. خب تا همین چیزی بود که من گفتم قاد از فران این رو گفتم این تقریبا همون بود و پیامک که... یه پرنایک خیلی... رو بخونم آه. هر تو را غرق صفح میخوا هر روز تو را کام روان میخوا از بح تو هر تو را از بح تو هر که ترا در... از... از تو را دارد دوست آرامش خاطر از خدا میخوا. ای ایران و ای ایانی، سال نو، بر همه شما عزیزان مبارک باد، محمد صادق اخلاقی از اندیشه شخیان. شاد باشید.